به نام خدا فرهنگ و ادب دوستان جوان سلام شب شما به خیر و شادکام افسانه ها هویت نامیرای هر ملتند از وقتی انسان متولد شد افسانه ها هم متولد شدند و در طول زندگی با انسان همراه بودند به همین خاطر هم افسانه ها به گروه خاصی تعلق ندارند و به با همه ارتباط برقرار می‌کنند و شنیدن و خوندن این افسانه ها برای همه جذاب و شیرین و لذت بخش الا شمای که علاقمند به دنیای پر رمز و راز های ملل هستید براتون افسانهای رو از ایران عزیزمون نقل میکنیم به نام هادی و بودی برگرفته از کتاب های دیار همیشه سبز به جمعآوری توسین حسین میركازمی روزگاری در دوران بسیار قدیم در کلبه نزدیک جنگل بزرگ زن و شوهری به همراه تنها دخترشون زندگی میکردن مرد هادی بود و زن بودی از بخت بد این دختر پدر و مادرش عقل درست و حسابی نداشتند. دختر هر روز صبح زود که از خواب بیدار میشد مشهور به کار میشد خونه رو مرتب میکرد ولی چند دقیقه بعد پدر و مادرش همه چیز رو به هم میریختند غروب که میشد دختر گاو و گوسفنداشون رو به طویله میبرد و میبست ولی چند دقیقه بعد پدر و مادرش اونا رو آزاد میکردند خلاصه دختر بیچاره هر کاری میکرد پدر و مادر کم عقلش همه یه کارا رو خراب میکردند دختر از این وز خیلی ناراحت و غمگین بود و دیگه تهمور خراکاری های پدر و مادرش رو نداشت تا اینکه یه روز که دختر مثل هر روز کوزه آب رو برداشته و به سر چشمه رفته بود دید پسر جوانی سوار بر اسب سفید به کنار چشمه اومده و به دختر نزدیک شد و از اون خواست تا اجازه بده از کوزش آب بنوشه دختر کوزه آب رو به پسر جوان داد و پسر که پسر حاکم شهر بود و برای شکار به اون حوالی اومده بود آبی نوشید و از دختر تشکر کرد و بعد هم سوار بر اسب سفیدش از اونجا دور شد ساعتی بعد که دختر به کلبه رسید دید پدر و مادرش مثل همیشه همه چیزو به هم ریختن. دختر بیچاره دوباره شروع به مرتب کردن خونه کرد. فردای اون روز پدر و مادر و دخترشون توی کلبه نشسته بودن که دیدن از بیرون سر و صدایی میاد. دختر بلند شد و از پنجره نگاه کرد. دید ادهی سوار دارن به طرف کلبهشون میان. سواران هر لحظه نزدیک و نزدیکتر می‌شدن تا اینکه به در کل رسیدن یکی از سواران پیاده شد و به در کل به نزدیک شد و آرام در رو به صدا در آورد زن که بودی بود پرسید شما کی هستین صدایی از پشه در جواب داد باز کنین ما از طرف حاکم شهر اومدیم پدر چه هادی بود اون مرد رو به داخل دعوت کرد و زن دوباره از مرد پرسید شما کی هستین؟ مرد جواب داد ما از طرف حاکم شهر اومدیم تا دخترتون رو برای پسر حاکم خواستگاری کنیم حادی بودی از خوشحالی از جا پریدن و با هیجان گفتن عروسی عروسی به به به دخترمون عروس میشه و شروع کردن به پای کوبی. دختر که از این رفتار پدر و مادرش شروعی نماینده یا حاکم شهر خجالت کشیده بود، پدر و مادرش رو به سکوت دعوت کرد. نماینده حاکم بی به پدر و مادر دختر از دختر پرسید دختر جان، شما حاضرید زن پسر حاکم شهر بشید و پدر و مادر دختر توی کلام یه حاکم پریدن و با خوشحالی گفتن بله بله بله اون حاضره ما هم حاضریم و دوباره شروع کردن به چرخیدن و پای کوبیدن دختر که این وضعیت رو دید سرش رو پایین انداخت و خطاب به نمایندهی حاکم گفت بله من حاضرم و شرم تمام وجودش رو در گرفت خلاصه چند ساعت بعد جارچی ها خبر عروسی پسر حاکم رو به اهالی شهر اطلاع دادند. شهر رو چراغونی کردند؟ هفت شب و هفت روز ساز و دهل به کار بود و شهر در شادی و خوشی غرقه دختر که از دست پدر و مدر کم عقلش نجات پیدا کرده بود توی قصر پسر حاکم زندگی تازه و خوشی رو شد مدتی گذشت روزی زن که بودی بود تنها و غمگین یه گوشه نشسته بود و برای دخترش دلتنگ بود اون وقت رو کرد به مرد که حادی بود و گفت اه بیچاره دخترمون حتما از دوری ما خیلی رنج میبره حادی میگم چطور سری به دخترمون بزنیم حادی با خوشحالی گفت باشه باشه خیلی وقتی که اونو ندیدیم و بعد قرار گذاشتن صبح زود برای دیدن دخترشون به قصر حاکم بریم توپ زود هادی و بودی از خواب بیدار شدند و آماده رفتن به شهر بودند که بودی گفت هادی، این خیلی بده که ما دست خالی بریم دیدن دختر و دامادمون هادی فکر کرد و گفت درسته ما باید یه سوقاتی خوب خوب برای اونا ببریم ولی چی ببریم؟ بودی فکر کرد و گفت آه فهمیدن من دو تا قرص نون درست میکنم و براشون میبریم حادی هم با خوشحالی جواب داد خیلی خوبه اونا حتما از صوقاتی ما خوششون میاد. چند لحظه بعد بودی شروع به پختن نون کرد نونها که آماده شد بلند شدن که را بیافتن که یهو هادی رو کرد به بودی و گفت بودی من یه فکر خوب دارم ما باید هرچه گوسفن داریم سر ببریم و بذاریم توی دیک بودی با تچوب پرسید گوسنده رو سر ببریم؟؟ برچی باید این کارو هادی لبخندی زد و محکم بر سر بودی کوبید و گفت:قللت <تصفح> کجا رفته زن؟ خب معلومه دیگه. برای اینکه وقتی از خونه دخترمون برگشتیم یک غذای آماده برای خوردن پیدا کنیم. بودی سری تکون داد و گفت. درست درست تو عقلت خیلی خوب کار میکنه مرد هادی قیافه حق به جانبی گرفت و ادامه داد تازه ما باید یه کار دیگه من بدیم تو باید هرچی آرد داریم خمیر کنی و نون بپزی تا وقتی که از خونه دخترمون برگشتیم حداقل یه نونی پیدا کنیم که با قزامون بخوریم ها؟ بودی با خوشحالی گفت؟ اه، تو واقعا عقلت خیلی خوب کار میکنه مرد و بعد هر دو شروع کردم به خندیدن بعد از چند لحظه هادی بلند شد و هرچی گسفندش سر برید و بودیم از گوشت اونا آب گوش درست کرد و آرت ها رو هم خمیر کرد و نون پخت. کارشون که تموم شد را افتادن به طرف خونه دخترش هنوز چند قدمی از رفتن هادی و بودی نگذشته بود که هادی ایستاد و رو کرد به بودی و گفت بودی یادمون رفت در کلبمون و قفل کنیم و بعد با سرعت برگشت و در کلبر گفت کرد و مشغول کندن زمین جلوی کلبه شد بودی خودش رو به هادی رسوند و با توجب گفت داری چیکار میکنی چرا زمینو میکنی بعدی در حالی که تند و تند با دستاش زمین رو میکند و نفس نفس میزد گفت ای می کلید خونه رو زیر خاک تنهان کنم تا برگردیم چون ممکنه توی راه کلید رو گم کنیم بودی سری تکون داد و دوباره به راه افتادن توی راه به مرد همسایه برخورد کردن مرد که می اونها اونا عقل درست حسابی ندارن به اونا نزدیک شد و از اونا پرسید کجا داریم میرین؟ حادی با خوشحالی گفت ما داریم میریم شهر دیدن دخترمون و بودی اضافه کرد همونی که زن پسر حاکم شهره و توی قصد زندگی میکنه مرد همساگه خنده‌ای کرد و همین که خواست از اون چدا بودی گفت آی سب کن میدونی ما تموم گوسفندامونو کشتیم و با گوشت و اون غذای ای درست کردیم ها؟ مرد همسایه سری تکون داد و لبخند زد حادی دنبال حرف بودی رو گرفت و اضافه کرد آردامونم نون پختیم که وقتی برگشتیم راحت راحت باشیم هم غذا داشته باشیم هم نون مرد همسایه این بار هم سری تکون داد و لبخندی زد بودی به مرد همسایه نزدیک شد و آهسته تو گوشون گفت هیچ میدونی ما کلید کلبمون هم توی حیات خاک کردیم مرد همسایه خنده ای کرد و زیر لب گفت عجب عجب بودی با نگرانی گفت نکنه نکنه یه وقتی بری و قضاهایی ما رو بخوری حالی که در دل به سادگی هادی و بودی میخندید به تندی گفت نه نه نه نه نه مطمئن باشین. هادی و بودی از مرد همسایه خداحافظی کردند و از مرد دور شدند مرد همسایه وقتی مطمئن شد که هادی و بودی خیلی از اون دور شدن یه راست به طرف کلبه اونا رفت کلید رو از زیر خاک بیرون آورد و وارد کلبه شد و تمام دار و ندار اونا را برداشت و غذاهای اون زن و مرد بیچاره رو هم خورد و به طرف خونه خودش برای عادی و بودی رفتند و رفتند تا به شهر رسیدند و بعد هم به قصر پسر حاکم های قصر از ورود اونا جلوگیری کردند و اونا هم شروع کردند به ناسزا گفتن خبر به دخترشون رسید که زن و مردی اومدن و ادعا میکنن که پدر و مادر شما هستن دختر سراسیمه به در قصر اومد و دید که بله پدر و مادرشان که مشغول و بحث کردن با نگهبانهای قصرن فورا دستور داد که اونا رو به داخل قصر راه بدن دختر هرچند از دیدن پدر و مادرش خوشحال شده بود ولی ولی از اونجایی که میدونست پدر و مادرش عقل درستی ندارن از این بابت نگران و ناراحت بود و میترسید که آبروی اونو در پیش پسر حاکم و درباریانش ببرن اتفاقا پسر حاکم در سفر بود و دختر از این جهت خوشحال خوشحال هادیو بودی از دیدن دخترشون خیلی خوشحال شدن و بودی فورا دو غرسنون رو به طرف دخترش دراز کرد و گفت بیا بیا بگیر یکی مال تو یکی مال شوهرت دختر دلش برای پدر و مادرش سوخت چون هم ساده بودند و هم مهربون دختر دوتا قرص نون رو گرفت و اونا رو داد به ندیمه مخصوص خودش و آهسته بهش گفت سود برا دوتا سوقات گرون قیمت تهیه کن تا اونا رو از طرف پدر و مادرم به شوهرم بدم اینجوری اعتبار آب منم حفظ میشه ندیمه مخصوص که محرم راز خانمش هم بود فورا دستور خانم رو اطاعت کرد و دوتا سوقات گرون قیمت تهیه کرد از راه رسید و موقع استراحت و خواب شد. دختر ندیمه مخصوص خودش رو صدا زد و گفته. امشب پدر و مادرم رو توی مرغدونی بخوابون ندیمه با تحجب پرسید. خانم جان چرا توی مردانی؟ دختر گفت. می ترسم. می ترسم کاری کنن و آبروی منو من و جروی درباریان ببرن. ندیمه هم رخت خواب هادی و بودی رو توی مردونی پنگ کرد هادی که خسته بود خیلی زود خوابش برد ولی بودی سخت در فکر بود و بالاخره طاقت نیاورد و هادی رو از خواب بیدار کرد و گفت هادی، هادی، بیدار شو هادی با چشمهای خوابالوده گفت چی شده؟ بودی گفت این همه مرگ خروس رو میبینی؟ حادی در حالی که خمیازه می زیر لب گفت می بودی گفت دختر بیچارمون چطور می‌تونه به این همه مرغ و خروس دونه بده و بعد با خوشحالی گفت هادی بیا یه کاری بکنیم هادی گفت چه کاری بودی گفت بیا یه دیگه آب جوش بیاریم و همه یه مرغا و خروسا ها رو توی اون بندازیم تا دیگه نتونن دونه بخورن و هادی با خوشحالی گفت آه، آره رس میگی اون وقت دخترمون از شر دونه دادن و اونا راحت میشه <تصفح> بعد بلند شدن و به کار شدن و دمدمای صبح بود که کارشون تموم شد و خوابشون سود که ندیمه برای بردن صبحونه به سراغ هادی و بودی رفت وحشت کرد و جیغ خفیفی کشید. تموم مرغا و خروسا بی جون یک گوشی که مردونی افتاده بودند و هادی و بودی در خواب سنگینی فرو رفته بودند ندیمه به سرعت خودش رو به خانم رسوند و جریان رو برش تعریف کرد خانم هم فورا دستور داد غلامی به بازار بره و به همون تعداد مرغ خروس خریداری کنه و توی مردونی جا بده غلام هم اطاعت کرد و مردونی دوباره از مرغ خروس پر شد شب بعد دختر تصمیم گرفت پدر مادرش رو توی انبار شیره و روغم بخوابونه و ندیمه رخت خواب اونا رو توی انبار شیره و روغن پنگ کرد باز هم نیمه های شب بودی، هادی رو از خواب بیدار کرد و گفت هادی، تو چطور دلت میاد راحت بخوابی در حالی که دختری بیچارمون احتیاج به کمک داره؟ هادی خوابالود پرسید چه کمکی بودی؟ بودی در حالی که به اطراف اشاره میکرد گفت نگاه کن، میبینی، این خمره بزرگ پر از شیر و روغنه؟ حادی نگاهی به خمره های بزرگ روغن و شیر انداخت و گفت خب دیدم حالا باید چیکار کنیم؟ بودی گفت زود باش زود باش باید همه این خمره ها رو باز کنیم هادی که هنوز گیج خواب بود گفت آخه برای چی باید این کارو بکنیم ها؟ بودی بر سرش فریاد کشید آخه عقلت کجا رفته حادی ها؟ دختر بیچارمون چطوری میتونه؟ هر دفعه در این خمره رو برداره ها؟ هادی چیزی نگفت و هر دو شروع به برداشتن درهای خمره های شیر و روغن کردند. و از اونجایی که هوا بود کم کم شیر و روغن ها به جوش اومدن و از خمره ها سرازی شدن و در یک چش بهم زدن تموم سر تاپای هادی و بودی پر از شیره و روغن شد و اونا تا صبح در همون وضعیت موندن تا اینکه باز ندیمه برای صبحونه به سراغ اونا اومد و دید که هادی و بودی دوباره دست و گل باب دادن فورا خانوم خودش رو در جریان کار گذاشته و خانم هم دستور داد تا پدر و مادرش رو به همون هم برده و سرواز اونا رو برد. کم کم دختر از دست خرابکاری های پدر و مادرش خسته شد و بنابراین تصمیم گرفت تا قبل از اومدن شوهرش اونا رو روونه خونشون کنه دختر مقداری پول یک کوزه روغن و کفش و لباس اونا داد و اونا رو تا در قصر بدرقه کرد در این لحظه خبر رسید که پسر حاکم از سفر برگشته و نزدیک قصره بالاخره پسر حاکم وارد قصر شد و از دیدن پدر و مادر زنش خوشحال شد دختر پیش تستی کرد و گفت پدر و مادرم باید هر چه زودتر به خونه برگردن پسر حاکم گفت نه نه نه نه اونا باید امشب رو پیش ما بمونن من تازه از راه رسیدم دختر چاره جز قبول کردن حرف شوهرش نداشت و توی دلش از آبروش میترسید و خدا خدا می کرد که پدر و مادرش امشب دیگه دست گل به آب ندن شب هنگام به دستور پسر حاکم هادی و بودی رو توی اتاق پر از خشت تلا آوندن باز هم نیمه های شب بودی هادی رو از خواب بیدار کرد و گفت هادی هادی بلند شد من نمیتونم راحت تخت بزنم این خشتا مزایما و بعد از هادی خواست که کمک کنه و خشتا رو از اتاق بیرون بریزه حادی هم بهش کمک کرد و تا صبح تموم خشت های تلا رو بیرون ریختن صبح زود دختر قبل از اینکه شوهرش از خواب بیدار بشه به سراغ پدر و مادرش رفت و دید که اونا باز هم دست گل باب دادن فورا به چند غلام دستور داد تا تموم خشت های تلا رو سر جاشون بذارن ها هم اطاعت کردند و تموم خشت های تلا به اتاق برگردن شد. گفتا که زد پسر حاکم از خواب بدار شد دختر به اون نزدیک شد و از اون خواست تا اجازه بده پدر و مادرش به خونهشون برگردن پسر حاکم هم وقتی اصرار زنش رو دید قبول کرد دختر یک حوزه روغن مقداری پول و کفش و لباس به پدر و مادرش داد و اونا به طرف خونهشون راهی شدن توی را به یه بیابون خشک رسیدن سطح زمین از بیابی ترک برداشته بود هادی با دلسوزی گفت می‌بینی میبینی بودی این زمین چون چربی نداشته به خودش به ماله اینجوری خوش شده بودی هم با لحن دلسوزانهی گفت آره آره آره آره آره, آره. گناه داره به خدا بیا این روغن رو بدیم به زمین تا به خودش به ماله و ترکاش خوب بشه خلاصه زن و شوهر کوزه روغن رو روی سطح زمین خالی کردند و رفتن همینجوری که داشتن میرفتن نگاهشون به چند تا افتاد که از این شاخه به اون شاخه می‌پریدن بودی از هادی پرسید هادی تو میدونی این کلاغا چرا هی از این شاخه به اون شاخه می پرن؟ هادی فکری کرد و جواب داد خب برای اینکه آفتاب داغ شاخه ها رو داغ کرده و اونا کفشی به پا نداشتن و پاهاشون میسوزه برای همینی که از این شاخه به اون شاقه میبرن. بودی با ناراحتی گفت آخه بیچارا بعد گفت چطور کفشای اضافهمونو منو بدیم به اونا؟ حادی قبول کرد و بلافاصله کفشای اضافه اضافهشونو به طرف کلاغ پرتاب کردند. کلاغ شروع به قارقار کردند. بودی با خوشحالی رو کرد به هادی و گفت میبینی؟ اونا دارن از با تشکر میکنن. حادی و بودی دوباره به راه افتادن تا اینکه به نیزار بزرگی رسیدن باد در حال وزیدن بود و در اثر وزش باد نیها و ساغه هاشون به این طرف و اون طرف خم می بودی گفت هادی چرا این نیا دارن می لرزن؟ نکنه سردشونه ها؟ حادی بلافاصله فاصله گفت اره سردشونه بودی بیا لباسای اضافمونو بدیم به اونا بودی قبول کرد و لباس های اضافیشونو روی نیه انداختند و از اونجا دور شدند. هوادی که داشت تاریک می که به کلبهشون رسیدن. کلید رو از زیر خاک در و در کلبه رو باز کردند. داخل خونه که شدن دیدن نه. نه خبری از غذاشون هست و نه از اسباب اساسیشون شون. به بودی گفت حالا که دار و ندارمونو از دست دادیم چیکار باید بکنیم؟ بودی گفت ولی ما یک کیسه پول داریم سوغات دخترمون یادت رفته هادی با خوشحالی گفت بودی تو چه حواس جمعی داری الان میرم و با اون پولا یک گوسفند چاق چله میخرم و برمیگردم حادی به بازار رفت و تمام پولها رو با یک گوسفند معامله کرد و به خونه برگشت حادی گوسفند رو سر بارید و هر دو مشغول کندن پوست اون بودن که هادی متوجه شد زنبور بزرگی روی سر بودی نشسته آروم جلو رفت و به بودی گفت بودی جان تکون نخور تکون نخور روی سر که زنبور بزرگ نشسته بودی گفت پس معطل چی استی چرا نمیکشی حادیم با احتیاط چاقوگ بزرگی رو که در دست داشت محکم بر فرق بودی زد چنان ضربهی که هم زنبور کشته شد و هم زنش بودی افسانه ایرانی هادی و بودی رو برای شما نقل کردم امیدوارم که شنیدن این افسانه برای چند هم که شده شما و ما رو از هیاهو و دغدغه های زندگی مادی دور کرده باشه این ویژگی افسانه ها و قصه هاست که آدم رو بادار میکنه تا برای لحظاتی خودش رو فراموش کنه و در واقع خودت باشی و خودت